دهم ده قدرت گروه مغز متفکر. نیروی پیشبرنده، گام مهم به سوی ثروت. قدرت برای موفقیت در جماوری پول ضرورت دارد. برنامه ها اگر فاقد قدرت کافی برای عملی کردن آنها باشند راکت و بیفایده هستند. این فصل روشی را شهر خواهد داد که فرد به وسیله آن به قدرت میرسد و قدرت را به کار میگیرد. قدرت را میتوان اینگونه تعریف کرد. آگاهی و شناخت سازمان یافتهی که هوشمندانه هدایت شده باشد. قدرت یعنی تلاش سازمان یافتهی که فرد را قادر میسازد میل را به معادل پولی تبدیل کند. تلاش سازمان یافته از طریق هماهنگ کردن تلاش دو یا چند نفر که در جهت یک هدف مشخص و با روحیه محتنی بر هماهنگی کار می کنند تولید می شود. برای جمعآوری پول قدرت لازم است. پس از جمع کردن پول قدرت برای حفظ پول لازم است. بیایید ببینیم چطور می توان قدرت کسب کرد. اگر قدرت آگاهی و شناخت سازمان یافته باشد، منطقی است که ابتدا منابع آگاهی و شناخت را بررسی کنیم. الف. هوش بینهایت. از طریق روندی که در فصل آینده با کمک تخیل خلاق توصیف میشود، میتوان با این منبع شناخت و آگاهی ارتباط برقرار کرد. به تجربه انباشت شده این شکل از تجربه انسان یا بخشی از که سازماندهی و ثبت شده است را می توان در هر کتابخانه مجهز عمومی یافت. بخش مهمی از این تجربه به صورت طبقه بندی شده و سازمان یافته در مدارس و دانشگاه ها آموزش داده می شود. جیم، و تحقیق در زمینه علم و عملاً در هر قشری انسانها هر روز در حال جمع‌آوری، بندی و سازماندهی داده‌های جدید هستند. این منبعی است که وقتی شناخت و آگاهی از طریق تجربه انباشت شده، حاصل می‌شود. باید به آن رو کرد. در اینجا نیز باید غالباً از تخیل خلاق استفاده کرد. از هر منبع موجودی می‌توان به شناخت و آگاهی رسید. با سازمان دادن شناخت، و آگاهی و تبدیل آن به برنامه های مشخص و با عملی کردن آن برنامه ها می توان شناخت و آگاهی را به قدرت تبدیل کرد. بدون به منابع شناخت و آگاهی و فقط با به تلاش یک فرد دستیابی به موفقیت ممکن نیست. چون که به طور خاص برای موفقیت جذب همکاری دیگران و برای جذب همکاری دیگران قدرت و برای قدرت آگاهی نیاز است. کسب قدرت از طریق مغز متفکر. مغز متفکر را میتوان اینگونه تعریف کرد: هماهنگی آگاهی و تلاش با روحیه مبتنی بر هماهنگی بین دو یا چند نفر به منظور دستیابی به یک هدف مشخص. هیچ کسی نمیتواند بدون استفاده از مغز متفکر قدرت زیادی داشته باشد. در فصلهای قبل دستورالعملهایی هایی برای تنظیم برنامه ها به منظور تبدیل میل به معادل پولیش ارائه شد. اگر این دستور را با پشتکار و هوش به کار بگیرید و در انتخاب مغز متفکرتان از تمایز و قوه تشخیص استفاده کنید حتی قبل از اینکه خودتان متوجه شوید به نصف هدفتان رسیده اید. بنابراین شما با انتخاب درست گروه مغز متفکرتان، به شناخت و درک بهتری از پتانسیل‌های های ناملموس خواهید رسید و ما در اینجا دو مشخصه اصل مغز متفکر را توضیح می دهیم. یکی از این مشخصه ها اقتصادی و دیگری روانی است. مشخصه اقتصادی احتیاج به توضیح ندارد. هر کسی خود را با پند، نظر مشورتی و همکاری مشخص گروهی از کسانی که مایلند با تمام وجود و با روحیه مبتنی بر هماهنگی کامل به او کمک کنند، احاطه کند به مزایا و منافع اقتصادی دست خواهد یافت. این نوع اتحاد مبتنی بر همکاری مبنای تقریبا هر ثروت عظیمی بوده است. شناخت آگاهی شما از این حقیقت عظیم قطعا موقعیت مالیتان را تعیین می کند. مرحله روانی اصل مغز متفکر خیلی انتظایی تر است و درک آن خیلی مشکل است چون به نیروهای نامری ارجاع دارد که نژاد بشر در کل با آن آشنا نیست. از این سخن می توانید به نکته مهمی پی ببرید. هیچ دو مغزی کنار هم قرار نمیگیرند مگر اینکه نیروی سوم نامری را خلق کنند که شبیه مغز سوم باشد. این واقعیت را به یاد داشته باشید که در کل جهان فقط دو عنصر وجود دارد انرژی و ماده این یک واقعیت مشهور است که ماده را میتوان به واحدهای مولکول اتم و الکترون تقسیم کرد واحدهایی از ماده هستند که میتوان آنها را ایزوله جدا و تحلیل کرد و همین ترتیب واحدهای انرژی وجود دارد ذهن انسان شکلی از انرژی است و بخشی از آن اساساً فرامادی است وقتی ذهن دو نفر به هماهنگی سازگار می شود، واحد های فرامادی انرژی هر ذهن میل ترکیبی را ایجاد می کنند که مرحله روانی مغز متفکر را تشکیل می دهد. اصل مغز متفکر یا به عبارت دیگر مشخصه اقتصادی آن برای اولین بار بیش از 25 سال پیش به ذهن اندرو کارنگی رسید. گروه مغز متفکر آقای کارنگی از 50 نفر تشکیل می شد. که برای رسیدن به هدف مشخصی که تولید و بازاریابی فولاد بود در اطراف او گرد می‌آمدند او همه ثروت خود را به قدرتی که از طریق این مغز متفکر کسب کرده بود نسبت می‌داد سابقه هر کسی که پول زیادی جمع کرده است و خیلیهایی را که ثروت متوسطی جمع کردهاند را تحلیل کنید متوجه می‌شوید که آنها آگاهانه یا ناآگاهانه اصل مغز متفکر را به کار گرفتند قدرت فراوان را با هیچ اصل دیگری نمیتوان به دست آورد. چگونه قدرت ذهن چند برابر می شود؟ انسان را می توان با یک باتری الکتریکی مقایسه کرد. این یک واقعیت معلوم است که گروهی از باتری های الکتریکی انرژی بیش از یک باتری مجزا تولید می کنند. این نیز یک واقعیت معلوم است که انرژی که یک باتری تولید می‌کند نسبت مستقیمی دارد با تعداد و ظرفیت واحدهای مجزای تشکیل دهنده آن. مغز نیز به همین شکل کار می‌کند. به همین دلیل است که بعضی از مغزها کارآمدتر از دیگر مغزها هستند و ما به این گزاره‌ی مهم می‌رسیم که گروهی از مغزها که با روحیه هماهنگی با هم متصل شدهاند، انرژی فکری بیش از یک مغز مجزا را تولید می کنند. درست مثل گروهی از باتری های الکتریکی که انرژی بیش از یک باتری مجزا تولید می کنند. با این مثال فوراً معلوم می شود که اصل مغز متفکر راز قدرت افرادی است که خود را در احاطه مغزهای های کارامت قرار میدهند. حالا به گزاره دیگری می رسیم که به شناخت مرحلی روانی مغز متفکر منجر می شود. وقتی گروهی از مغز ها با هم هماهنگ می شوند و با هارمونی عمل می کنند، انرژی که از طریق این اتحاد ایجاد می شود در دسترس تک تک مغ های آن گروه قرار میگیرد هنری فورد وقتی کارش را شروع کرد فقیر و بی سواد بود فورد در عرض یک دوره کوتاه ده ساله بر این موانع قلبه کرد و در عرض بیست و پنج سال خودش را یکی از ثروتمندترین مردان در آمریکا کرد این واقعیت را نیز به این نکته پیوند بزنید. زمانی که سریعترین جهش آقای فورد دیده شد، او دوست شخصی توماس ادیسون بود. متوجه شدید که یک ذهن می‌تواند چه تأثیری بر ذهن دیگری داشته باشد. یک گام دیگر بردارید و به این واقعیت توجه کنید که پیشرفت های آقای فورد زمانی صورت گرفت که او با هاروی فایرستون، جان باروز و لوتر بوربانک که هر یک از آنها توان مغزی بالایی داشتند، آشنا شد و این شاهد دیگری است دال بر اینکه قدرت از طریق اتحاد دوستانه ذهن تولید می شود. به سختی می توان تردید کرد که هنری فورد از آگاهترین افراد در دنیای کسب و کار و صنعت بوده است. ثروت او نیاز به بحث ندارد. دوستان سمیمی هنری فورد را که نام بعضی از آنها ذکر شد را تحلیل کنید تا برای درک این نکته آماده شوید که انسان، طبیعت و عادات و قدرت اندیشه های کسانی را پیدا می‌کند که با روحیه مبتنی بر همدردی و تفاهم و هماهنگی با آنها معاشرت می‌کند. هنری فورد از طریق متحد شدن با ذهن‌های بزرگ تا آشت فکرشان در ذهن خودش جذب شدند با فقر و بیسوادی جنگید. آقای فورد از طریق معاشرت با ادیسون، بوربانک، باروز و فایرستون به قدرت مغزی، مقدار و جوهری هوش، تجربه، شناخت، آگاهی خودش و به نیروهای معنوی این چهار مرد اضافه کرد. علاوه بر این، او از طریق روندهایی که در این کتاب توصیف می‌شوند، اصل مغز متفکر را اقتباس و از آن استفاده نمود. این اصل در دسترس شماست. قبلا ماهاتما گاندی را معرفی کردیم. شاید اکثر کسانی که اسم گاندی را شنیدند او را یک آدم کوچک عجیب و غریب بدانند که بدون لباس رسمی به این طرف و آن طرف می رفت و برای دولت بریتانیا دردسر ایجاد می کرد. واقعیت این است که گاندی یک آدم عجیب و غریب نبود. او قویترین انسان عصر خودش بود. این برآورد بر اساس تعداد پیروان او و میزان باور آنها به رهبرشان است. علاوه بر این، او احتمالا قویترین مردی است که تا به حال زندگی کرده است. بیایید روشی را که او از آن طریق به این قدرت حیرت انگیز رسید بررسی کنیم. این روش را می توان در چند کلمه توضیح داد. او دویست میلیون نفر را برانگیخت که با ذهن و جسم و با روحیه مبتنی بر هماهنگی برای رسیدن به یک هدف مشخص و معین با هم متحد شوند و همکاری کنند. خلاصه اینکه گاندی معجزه کرد موجزه او این بود که دیویست میلیون نفر را مجبور نکرد بلکه برانگیخت تا برای مدت زمان نامحدودی با روحیه مبتنی بر هارمونی با هم همکاری کنند. اگر شک دارید که این یک موجزه است، سعی کنید دو نفر را برانگیزید که برای هر مدتی که میخواهید با روحیه مبتنی بر هارمونی با هم همکاری کنند. کسی که کسب و کاری را مدیریت می‌کند، می‌داند وادار کردن کارکنان به کار با یکدیگر بر اساس روحیه‌ای که شبیه هارمونی باشد، چه کار سختی است. همانطور که دیدید، فهرست منابع اصلی که از انها می می‌توان به قدرت رسید، با هوش نهایت شروع می‌شود. وقتی دو یا چند نفر با رویه مبتنی بر هماهنگی همکاری می‌کنند و در جهت یک هدف مشخص کار می‌کنند، خود را از طریق آن اتحاد در موقعیتی قرار می‌دهند که قدرت را مستقیما از انبار جهان شمول عظیم هوش بی‌نهایت جذب می‌کنند این بزرگترین منبع قدرت است منبعی است که نبوغ به آن رو می‌کند منبعی است که هر رهبر بزرگی چه آگاهانه و چه ناآگاهانه به آن رو می‌کند دو منبع اصلی دیگر که شناخت لازم برای انباشت قدرت از آن حاصل می‌شود منابعی هستند که از حواس پنجگانه قابل اعتماد تر نیستند حواس همیشه قابل اعتماد نیستند هوش بی نهایت اشتباه نمی کند در فصلهای بعدی روش هایی که از طریق آنها راحت تر می توان با هوش بی نهایت تماس برقرار کرد به بیزان کافی توصیف خواهند شد دقت کنید این موضوع دورهای در باب دین نیست هیچ اصل بنیادی در این کتاب نباید به عنوان اصلی توصیف شود که میخواهد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در عادات مذهبی کسی مداخله کند. این کتاب فقط میخواهد به خواننده بیاموزد چطور هدف مشخص میل به کسب پول را به معادل فیزیکیش تبدیل کند. همچنان که این کتاب را میخوانید فکر و تأمل کنید کل موضوع به زودی برایتان روشن خواهد شد و آن را آنچنان که هست خواهید دید. حالا جزئیات تک تک فصل ها را خواهید دید قدرت احساسات مثبت. درست مثل نیروی جاذبه که آب را از بالا به پایین یک تپه می کشاند نیروی وجود دارد که پول بیشتری برای شخصی که درهای ثروت بر او گشوده شده به ارمغان می آورد. این نیرو در جهت خلاف هم جریان دارد یک جریان نامری عظیم که به یک جهت روان است همه کسانی که در جهت آن جریان قرار دارند را به سمت جلو و به سمت ثروت میبرد. یک جریان هم در جهت مخالف روان است و همه کسانی که از بدشانسی در آن مسیر هستند و قادر نیستند خودشان را از آن جریان جدا کنند به سمت پایین و به سمت بدبختی و فقر میبرد. هر کسی که ثروت عظیمی اندوخته است وجود این جریان زندگی را تصدیق میکند. حیجانات مثبت فکر آن طرف جریان را که فرد را به سوی ثروت میبرد تشکیل میدهند. حیجانات منفی آن طرف جریان را که فرد را به سوی فقر می برد تشکیل می دهند. برای کسی که هدفش از مطالعه این کتاب اندوختن ثروت است درک این موضوع اهمیت فوق دارد. اگر در جهت جریان قدرتی که منجر به فقر می شود باشید، این آگاهی میتواند به عنوان پارویی عمل کند تا خودتان را با آن به آن طرف جریان بیاندازید. این آگاهی فقط از طریق عمل کردن است که میتواند به شما کمک کند. صرفا خاندن و نظر دادن به هیچ وجه برای شما سودی نخواهد داشت. بعضی از افراد بین جهت مثبت و منفی در حال نوسان هستند و گاهی در این طرف جریانند و گاهی در آن طرف. سقوط وال در سال 1929 باعث شد میلیونها نفر از طرف مثبت جریان به طرف منفی جریان بیفتند. بعضی از این افراد دست و پا میزدند و بعضی از آنها در وضعیت استیصال و ترس بودند تا به طرف مثبت جریان برگردند. این کتاب مخصوصاً برای آن افراد نوشته شده است. فقر و ثروت غالباً جاهایشان را با هم عوض می کنند. سقوط والستریت این حقیقت را به جهانیان آموخت ولی با این حال جهانیان این درس را به یاد نخواهند آورد. فقر معمولاً به صورت طبیعی جای ثروت را میگیرد. وقتی ثروت جای فقر را بگیرد، تغییر معمولاً از طریق برنامه که دقیقاً تنظیم و اجرا شوند صورت میپذیرد. فقر به برنامه نیاز ندارد. لازم ندارد کسی کمکش کند چون گستاخ و بیرحم است. ثروت، کم‌روح، خجالتی و ترسوست. باید آن را جذب کرد. هر کسی میتواند آرزوی ثروت بکند، ولی کمتر کسی می داند که یک برنامه دقیق به اضافه یک میل سوزان برای کسب ثروت تنها راههای قابل اطمینان هستند.